از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا ان یگانه مهربان سلام شب شما به خیر و شادکن افثانه ها رنگین اقوام ابتدایی و تا مردم امروزی خوابهایی خواب میز و جذاب. افثانه در پس ظاهر ساده و روان خودشون، سخنان امین و حکمت های ارزشمندی رو در خودشون محفوظ دارند. افسانهای رو براتون نقل می کنم. از مردمان استان فارس به نام افسانه بخت، گرفت از کتاب قصه های مردم فارس به گردآوری عبالغاسم فقیلی امیدوارم تا پایان این افثانی زیبا و شنیدنی ما رو همراهی کنید روزی روزگاری در یه دور دور دور دو تا برادر بودند که یکی صاحب ثروت و زن و فرزند بود و اون یکی آه نداشت که با ناله سودا کنه برادر دومی اگرچه نون و نمک برادر اولی رو میخورد اما چشم دیدن اونو نداشت و در هر فرصتی که به دست می‌آورد سعی می‌کرد به برادرش ضرر و زیانی برسونه روزی یکی از شطورهای برادرش رو از بالای کوه به پایین پرتاب کرد و با خوشحالی به خونه برگشته. ولی با کمال تعجب دید که مردی شطر رو به دوش گرفته و برمیگردونه برادر دومی که از این کار به حیرت افتاده بود جلو رفت و گفت وای آقا امو. امو با تو هم امو. تو کی هستی امو. چرا اون شطور رو برگردوندی مرد ناشناس سریع تکندد و گفت من بخت و اقبال برادر تو هم برادر دومی از این حرف مرد ناشناسیه که خورد چند قدم ازش فاصله گرفت بعد از چند دهست جلوتر اومد و از مرد ناشناس پرسید ببینم امو تو تو از بخت و اقبال منم خبر داری؟ مرد ناشناس نگاهی به قد و بالای برادر دوم انداخت و پوست زنان جواب داد. بخت و اقبال تو در خوابه. برادر دوم با تجرب پرسید. در خوابه؟ خب چه کار کنم تو بیدار بشه؟ اصلا بخت من کجاست؟ مرد ناشناس گفت. تو باید بری دنبال بختت. برادر دومی با شنیدن این حرف مرد ناشناس به دنبال پیدا کردن بخت و اقبالش بر افتاد و رفت و رفت و ر. جوان قصه ما یا همون برادر دوم رفت و رفت تا اینکه در بین راه به شیر پیری رسید که آه و ناله می کرد جوان با دیدن شیر ترسید و خودشو عقب کشید خواست فرار کنه که شیر گفت نه ترس نه ترس کاری ندارم آخ دندون آخ, آخ دندون شیر همونطوری که از درد دندون ناله میکرد گفت آخ, آخ دندونه دندونم کجا میری جوون جوون گفت من من دارم میرم میرم دنبال بخت و اقبالم شیر با خوشحالی گفت آه آخ که خوب حالا که داری میری سراغ وقت و اخبالت. از اون بپرس من سالاست که دندونم درد میکنه چیکار کنم که درد لعنتی درد لعنتی تموم بشه خلاص بشم وای دندونم آخ جوون به تندی گفت باشه باشه حتما من حتما من. منتظر باش من زود بر و جواب سوالت رو برات میارم بعد از شیر خداحافظی کرد و به راه خودش بدام جوون رفت و رفت تا اینکه به کلبه ای رسید توی اون کلبه مرد کشاورزی با زن و تنها دختری زندگی میکرد در زد و چند لحظه بعد مرد کشاورز در رو به روی اون باز کرد جوون که خستگی از سر و صورتش میبارید گفت خیلی سلام ممکنه من امشب رو توی کلبه ای شما بمونم خیلی خسته و گرستم مرد کشاورز گفت جوون تو نمیتونی توی این کلبه بخوابی آخه جوون با ترجب پرسید آخه چی چشکاری داره مرد کشاورز گفت ای جوون اینو بدون که نیمه های شب که میشه سنگ های از می میریزه این سنگ ها به ما آسیبی نمیرسونن اما اما من میترسم به تو آسیبی برسونن من من الان غذا میارم بخور و بیرون از کلبه بخواب اینجوری بیشتر در امانی برادر دومی چیزی نگفت مرد کشاورز توی کلبه رفت و چند دقیقه بعد با یه سینی پر از غذا اومد پیش برادر دومی نشست و بعد ازش پرسید نگفتی کجا میخوایی بری؟ برادر دومی جواب داد آه من دارم میرم دنبال بخت و اقبالم مرد کشاورز شوهرش زده گفت آه چه خوب چه خوب چه خوب میشه میشه وقتی بخت و اقبالت رو دیدی ازش بپرسی علت ریزش این سنگ کو روی کلبه ما چیه برادر دومی در حالی که مشغول خوردن غذا بود گفت حتما حتما اینو ازش میپرسم و بعد از خوردن شام گوشه دور از کلبه مرد کشاورز دراز کشید و به خواب عمیقی فرو صبح فردا جوون از خواب بیدار شد و دوباره به راهش ادامه داد. رفت و رفت و رفت تا به روستایی رسید. توی اون روستا درخت های زیادی وجود داشت. آب چشمه ها هم فراون بود. اما محصول کشاورزی مردمان اونجا هیچ تعریفی نداشت. جوون زیر درخت بیدی کنار چشمه نشست تا خستگی در کنه. در این موقع مردی خمید پشت بهش نزدیک شد بعد از سلام و احوال پرسی گفت ای جوان به چی نیتی در سفری کجا میری؟ جوان جواب داد آه من دارم میرم دنبال بخت و اقبالم میخوام بخت و اقبالم رو پیدا کنم مرد خمید پشت تا این حرف رو از زبون جوان شنید با التماس گفت خواهش بهش می کنم. اگه بخت و اقبالت رو دیدی مشکل ما رو هم باشدن یوم بسا شاید گره از مشکل مردمان این روستا باز بشه خودت که دیدی روستای ما تو چه وضعیته؟ این همه چشمه این همه درخت اما اما, اما اما از محصول خبری نیست جبون اتمان یه جای کاری داره شاید بخت و اقبال تو راه حلی برای مشکل ما پیدا کنه جوون گفت بله بله ممکنه باشه من اگه اونو دیدم مشکل روستای شما رو هم بهش میگم منتظر جواب باشید زود برمیگردم. بعد از مرد خمید پشت خداحافظی کرد و به راهش ادامه داد جوون خس و گرسنه به راه شد داد رفت و رفت و رفت تا رسید به جایی که جایگاه بخت و اقبال ها بود گشت و گشت و گشت تا بالاخره بخت خودش رو پیدا کرد ولی دید بختش تو خواب عمیقی فرو رفته جوون بالای سر اون رفت و گفت بیدار شو بیدار شو بخت جوون خوابالو جواب داد آه چیه آه آه تو چی هستی چی میخوای ها؟ جوون پرسید تو تو بخت منی بخت نگاهی به جوون انداخته چشش رو مالید و گفت آره من بخت تو هم خودم هستم جوون نشست کنار بخت خودش و تمام ماجرای زندگیش رو برای اون تعریف کرد بخت سری تخون داد گفت آی یا یا ببین جوون تو لیاقت و شایستگی نگهداری از بخت و اقبالت رو نداری برای همینی که منو تو گوشهی به خواب دیدی اعمال تو منو هم گوشهگیر کرده الان سالاست که توی خواب به سر میبرم جوون با ناراحتی و وزرت گفت اما تو تو تو الان بیدار شدی بخت گفت اخ بیدار شدن من دیگه هیچ فایده ای برای تو نداره اما جواب سوالایی که توی ذهنت داری به اون شیر بگو اگه مغزی آدم ابله و نادون رو بخوره دندون دردش بر همیشه خوب میشه به صاحب اون کلبه یعنی مرد کشاورز بگو اگه دخترش رو شوهر بده و به خونه بخت بفرسه بر همیشه ریزش سنگ ها از میشه و اما مشکل مردم اون روستا اینطوری حل میشه که زیر درخت بیدی که کنار چشمه قرار داره گنجی پنهونه مردم اون روستا باید درخت رو قطع کنن گنج رو پیدا کنن و به مصرف برسنن و از اون به بعد زندگی اونها بر برمخه مرادشون میچرخه جوون که دید فایده ای نداره از بخت و اقبالش خداحافظی کرد و برگشت. جوون قصه ما یا همون برادر دومی اومد و اومد و اومد تا رسید به همون روستا مرد خمید پشت به پیشوازش اومد و گفت خوش قبر باشی جوون مشکل ما رو پرسیدی؟ ها؟ جوون تمام حرفایی رو که از بختش شنیده بود برای مرد روستایی تعریف کرد مردم اون روستا هم زود دست به کار شدن زیر درخت گنج رو پیدا کردند. کتخدای روستا گفت چون این جوان در حق ما محبت کرده نصف این گنج متعلق به این جوانه و از امروز اون میتونه توی روستای ما زندگی کنه و جوان کلام خدا رو قطع کرد و گفت نه نه نه نه من نه گنج میخوام و نه دیرم میخوام توی این روستا زندگی کنم من باید پیش برادرم برگردم و بعد از مردم روستا خداحافظی کرد و براه افتاد جوون اومد و اومد و اومد تا به کلبه مرد کشاورز رسید مرد کشاورز که از دیدن اون خوشحال شده بود فورا پرسید مشکل ما رو با بخت درمیون گذاشتی جوون؟ جوون گفت البته بخت من گفت اگه دخترت رو به خونه بخت بفرستی مشکلت حل میشه مرد که لبخندی زد و گفت آه چه خوب تو جوون خوبی به نظر میرسی چه کسی بهتر است تو بیا و دخترمون رو به عقد خودت در بیار و همینجا کنار ما زندگی بی رو شروع کن جوون گفت نه نمیتونم من باید پیش برادرم برگردم مرد کشاورز هرچه هرچه اصرار کرد جوون قبول نکرد که نکرد و به راهش ادامه داد. جوان اومد و اومد و اومد تا رسید به شیر دید شیر همچنان در حال نالی کردنه شیر با دیدن جوان با خوشحالی پرسید اوه چه چه خبر علت دندن درد من پرسیدی؟ جوان گفت البته که پرسیدم بذار اصلا از اول تا آخر سفرم رو برات تعریف کنم بعد مو به مو تمام ماجرای سفرش رو جوون برای شیر تعریف کرد و در نهایت گفت ای شیر دوای درد تو خوردن مغزی آدم ابله و نادونه شیر فکری کرد و با خودش زیر لب گفت چه کسی از این جوان اولادتر خودند کسی که اونها رو ثروت و گنج اون دختر وحراوین زیوار رو ندیده بگیره اون رو حتما حتما حتما افله روزگار، بعد شیر با یه حمله ناگهانی جوون رو دید افسانه بخت رو از مردمان استان اوستان فارس براتون نقل کردم این افسانه بر از کتاب صحای مردم فارس گردآوری ابوالقاسم فریری بود که امیدواریم از شنیدن اون لذت برده باشید افسانه ها برای این خلق شدن که ما بونا گوش بدیم یا اونا رو بخونیم و از اونا پند بگیریم شب آرام و خوبی رو براتون آرزو می کنم اصال افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور پور ویراستار الهام اشجع اجرا مهران دوستی سدابردار هدیه سیفیکار تألیف کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود